آن وقتی به آن روزها فکر می کنم حتی یادم نمیآید اولین به بر سر چه بود فقط یادم است به زور می رفتم و با اوقات تلخ برمیگشتم. می گشتم. سر بحانه های جزئی قهر و بد میکردم می کردم و روز را به هر دوی من تلخ میکردم. شاید در نهان هدفم می بود که محمد را از کوه رفتن منصرف کنم فکر میکردم به این طریق دل زدش می کنم قافل از اینکه که مرور از خود من که باعث این جریان بودم خسته و دلزده می شود. و از وقتی بدتر شد که آرام آرام رو در بایستی را کنار گذاشتم و جلوی بقیه هم حفظ ظاهر نکردم و همین درگیری های ما را دامن دارتر و قهرها را طولانی تر کرد و تقریباً بیشتر روزهای هفته با هم سرسنگیم بودیم. و چون محمد سال آخر بود و درسهایش سنگین و فشرده و از طرفی دنبال کار پذیرش از دانشگاه های خارج از کشور بود و به دنبالش سخت مشغول خواندن زبان مثل گذشته زیاد وقت آزاد نداشت. آن قهرها در زمان کمی که با هم بودیم باعث اسم شد فاصلهمان بیشتر و بیشتر بشود. یکی از همان روزها بود که محترم خانم وقتی در خانه شان منتظر محمد بودم سر صحبت را باز کرد و حرف را به عروسی و رفتن محمد به خارج کشید و گفت مادر تو سعی کن من محمد اندازه خودش درسشو خونده آیندش هم که قصه ای نداره باباش پشتشه واسه چی بره چند سال هم آواره دیار غربت بشه بلکه تو با مهربونی بتونی نرمش کنی. همینطور که از وقتی عقد کردید نتونست ازت جدا بشه، حالا یه خورده بهش سخت بگیری. البته نه با قهر و دعوا با ناز و نوازش و مهربونی، بلکه قبول کنه نره. من میدونم، به خاطر اینکه فکر رفتن توی سرشه، نمیخواد عروسی کنه و زندگی پهن کنه، مبادا پای گیر بشه. حقیقتش میترسم اینم مثل اموهاش بره اونجا پابند بشه. راستش اون دفعه که حرف شده بود که شاید حامله باشی خدا میدونه چقدر زخ کردم. من در حالی که رنگ به رنگ می شدم سرم را پایین انداختم. محترم خانم با خنده گفت خجالت نکش ما جون چرا سرخ شدی؟ به جان محمد قسم که تو با فاطمه و زری برای من فرقی نداری. حالا حامله هم شده بودی مگه جرم و جنایت کرده بودی؟ تو به محمد نگاه نکن که ماشالله همه یه جوره دیگه است. با فاطمه گی بیچاره چقدر اوقات تلخی کرد تا رفتین و برگشتین. خلصه مهنز جون، محمد که حرف حرف خودشه، من امیدم به توست. ببین میتونی؟ خندید، گلش بزنی بلکه راضی بشه. اصلا میدونی چیه؟ همون حامله هم بشه، هیچ وقت طاقت نمیاره تو رو بذاره و بره. یکی دو سالم که بگذره دیگه سرش به زندگی گرم شده دنبالش رو نمیگیره خودت هم دلت شور درس خوندنتو نزنه ایشالله راضی که بشه میایین اینجا پیش خودم تو هم با خیال راحت درس بخون اگه بهونه یه کارو هم گرفت باور نکن بیخود میگه الان هم اندازه یه زندگی درآمد داره هر مهدی محدی طلبکاره این بچه هم ملاحظه کاره از بس توی پول گرفتن حیا به خرج میداد حاجا قا واسه اینکه بهش سخت نگذره. از وقتی مهدی زنگ گرفت سه تا سهم مساوی براشون تعیین کرد و جایی سرمایه داد بهشون و گفت خواستین خودتون باهاش کار کنین نخواستین من باهاش کار میکنم ماه به ماه آیدیش رو میرزنم به حسابتون خلاص مهدی پولو گرفت مرتضی هم خودش داره با پول کار میکنه ولی پول محمد دست هاجاقاست. و ماه به ماه میریزه به حسابش. خلصه برای خرجیم مشکل نداره. اگه گفت بدون بهون است. چقدر ته دلم از حرفهای محترم خانم زخ می کردم و فکر می کردم راستی اگر می تونستم محمد رو راضی کنم چقدر خوب می شد. بیچاره محترم خانم خبر نداشت که خودم از همه بیشتر دلم می خواهد که از شر درس راحت بشوم. و دلم شور چیزی را که نمیزند همان درس است. ولی در مورد بچه احساس غریبی داشتم. فکر میکردم خیلی عجیب و زود است که بچه دار بشوم. ازدواج، رفتم به خانه خودم و تنها شدن با محمد آرزویم بود. ولی بچه دار شدن برای مفهومی ناشناس و دور از ذهن بود. لاقل توی این یک مورد عقلم رسیده بود که هنوز قابل مادر شدن نیستم. به هر حال به فکر فرو رفتم که چطور محمد را راضی کنم. خصوصا که از فاصله‌ای که داشت بینمان ایجاد می دل گرفته و نگران بودم. بقیه روز توی این فکر بودم تا شب. آن شب طبق معمول محمد قرق کتابهایش بود و من قرق نقشه کشیدم. و چون با هم سرسنگیم بودیم، نمیدانستم چطور باید شروع کنم و چه بگویم. وقتی هیچ حرفی به ذهنم نرسید، از آنجا که دلم برای سر به سر گذاشتن با او هم تنگ شده بود، یک دفعه بی مقدمه رفتم کنارش. کتابش را بستم و فوری نشستم روی کتاب. محمد با تعجب و حیرت از رفتار من مبهوت گفت. ا مهنس چه کار میکنی؟ کتاب امانت خراب میشه. با لحنی بچگانه و لوس گفتم. به جهنم بزه خراب بشه تا دیگه بهت امانت ندن. در حالی که سعی میکرد از روی کتاب بلندم کند گفت. به جهنم؟ دست شما درد نکنه. اون وقت میدونی چقدر بابت هر کدوم اینا باید پول بدم. از اون گذشته. باز دوباره لباسه منو پوشیدی؟ منظورش پلیورش بود فهمیدم میخواهد حواسم را پرت کند همانطور که داشتم مقاومت میکردم که نتواند از روی کتاب بلندم کند یک دفعه گفتم من این حرف سرام سرم نمیشه بی خودی حرف تو حرف نیار که حواسم را پرد کنی که عروسی میکنیم جا خورد بحت زده صاف نشست و من را با تعجب نگاه کرد پرسید چی گفتی؟ تک تک و شمرده تکرار کردم. کی عروسی می کنیم؟ ابروهایش را به علامت تعجب بالا برد و بعد از چند لحظه مکس با نهایت مهربانی از روی میز بلندم کرد و نشاندم روی پایش. درست مثل یک بچه لوس. دوباره او شد یک پدر مهربان و صبور. و من یک بچه نونو رو زبان نفهم. در حالی که چشمهایش برق شیطنت و شوخی داشت گفت والا اگه منظورت جشن و لباس عروس پوشیدن و این عرفاست که یادم عروسی کردیم ولی اگه منظورت اون یکی عروسی هم هست در حالی که چشمهایم گرد شده بود با پرخاش و اعتراض پریدم وسط حرفش محمد در حالی که از تایت دل می خندید گفت تو پرسیدی که یه میکنیم نپرسیدی؟ نه پرسیدی؟ منظورم اونی نبود که تو میگی همانطور خندان و شیطنت بار گفت پس چی بود؟ در حالی که خودم را هم عصبانی و هم خجالت زده نشان میدادم گفتم منظورم رفتن خونه خودمون بود که در حقیقت باز همونه که من میگم، نه؟ دیگر جیخم هم درآمد او میخندید و من که هرسم گرفته بود کتابش را که میدانستم رویش حساسیت دارد برداشتم و سعی کردم فرار کنم. همانطور که نگه هم داشته بود و میخندید گفت مهناز، جون من که تو با زمین خواهش میکنم. بعد از جا بلند شد. کتاب را از دستم درآورد و گذاشت روی میز و دوباره بغلم کرد و از میز دورم کرد. آنقدر که وانمود میکردم ناراحت نبودم. ولی از این کشمکش از اینکه خودم را برایش لوس کنم لذت می بردم و به حالتی که انگار می خواهم فرار کنم هنوز دست و پا میزدم. در حالی که سعی می کرد آرامم کند گفت: «عزیزم، گفتم ببخشید دیگه شوخی کردم. حالا به فرمایی من گوش میکنم. همانطور دست و پا زنان گفتم گوش نمیکنی؟ ازیت میکنی؟ خندان لبه تخت نشست و مرا هم به زور نشاند روی پایش. رویم را به حالت قهر برگرداندم. صورتم را برگرداند و توی چشمهایم نگاه کرد. دیگر او هم فهمیده بود وقتی توی چشمهایم نگاه میکند تسلیم میشدم. بعد با سرشار از محبت گفت. آدم خوشگل تنها که باشه فایده نداره. باید خوش اخلاقم باشه تا بشه یه ماه کامل. از اون گذشته. من همه جور ماه دیده بودم غیر از ماه اخمو. حالا مثل یه دختر خوب و باز کن تا در مورد عروسی صحبت کنیم. کلمه عروسی را باز با کنایه و شیطنت به زبان آورد. این بار از طرز نگاهش و تکیه بامزه و معنیداری که روی عروسی کرد، نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم. خب، حالا شو. اگه بدونی خنده ها چقدر قشنگه، هیچ وقت اخم نمی کنی، حالا بفرمایید. در حالی که انگشتم را به علامت تهدید تکان میدادم با لحنی آمیز گفتم: محمد، به خدا اگه اذیت کنی حرفم را قطع کرد. انگشتم را توی هوا گرفت و بوسید و گفت شما اگه تهدیدم نکنی فرمانتون اجرا میشه. بفرمایی. گفتم دیگه تو یه جنس میدونی چی میگم. خودتو به اون راه میزنی. دوباره خندید و گفت با کن اولش جا خوردم و فکر کردم منظورت همونه. با رنجیدگی و اختار گفتم محمد، اه، میگم یه لحظه فکر کردم. خیلی خوب، ببخشید که اشتباه فکر کردم. بعد از اون، عزیز دلم، هنوز هم تو درس داری و هم من. قرار ما از اولم این بوده که درس هر دومون تموم بشه، نه؟ شما اون اول که صحبت کردیم نگفتیم برای عروسی عجله داری؟ عروسی را کشدار و با تنه گفت. تا دهنم را باز کردم دستش را آرام روی دهنم گذاشت و ادامه داد. از اون گذشته الان تا سالگرد خانم جون خودت میدونی دونی که همچین چیزی امکان نداره. اما اگه منظورت همون عروسی هم هست که من میگم باشه. هر وقت شما بگی. باز قسته سر به سر گذاشتن داشت. به روی خودم نیاوردم. گفتم. حالا کی گفته جشن بگیریم؟ وسیل من رو میبریم خونه شما و بی سر و صدا زندگی رو شروع میکنیم. اونطوری حرف و سخن نمیشه و عیبی نداره. یک دفعه حالت نگاهش عوض شد. با موشکافی و دقت توی چشمهایم خیره شد و پرسید. راستشو بگو چی شده که این فکر توی سرتو افتاده. منو تو الان هم با همیم. یه چیزی شده که تو این حرفو میزنی. حرفی شده. آقا جون اینا چیزی گفتن؟ فکر کرده بود که خانواده ما چیزی گفتند. دست باچه و گفتم. نه به خدا. خودم خسته شدم. و از دهنم در رفت. اصلا مامانتم حرفم را قطع کرد. بند را آب داده بودم و محمد فوری حوشی شد. پس این آشو مادر عزیز خودم پخته. آره؟ توصیه نکرد اگه بچه دارم بشی بهتره؟ ماتم برد. چقدر جنس این محمد خراب بود؟ در حالی که از روی پایش بلند می شدم با قیز گفتم نه خیر و سعی کردم توی چشمهایش نگاه نکنم ولی محمد که دستهایم را نگه داشته بود نمی گذاشت که بروم مهناز توی چشمه من نگاه کن با تمام نیرو سعی داشتم دستم را از دستش در بیاورم ولی موفق نمی شدم. میخواستم با سر و صدا کردن خودم را آزاد کنم و از جواب دادن رو در رو فرار کنم. ولی او که خون سرد و آرام نشسته بود و تقلا کردنم را نگاه میکرد گفت بی خودی شلوغ نکن. میدونی که تا خودم نخوام نمیتونی دستو تو در بیاری. درزم گفتن یا نگفتن تو فرقی نمیکنه. این حرف رو خودم قبلا ازشون شنیدم. حالا که از من ناامید شدن دست به دامن تو شدن. نه؟ از بیعرزگی خودم لجم گرفته بود حرفش را نشنیده گرفتم و به تقلا کردن ادامه دادم ولی بالاخره خسته شدم و ولو شدم توی بغلش و با هرس و لج گفتم فقط تیف که زور تو از من بیشتره با خنده گفت اگه نبود چی میشد باز حرف بیهوده زده بودم دیدم راست میگوید مثلا اگر زورم بیشتر بود چه کار می کردم؟ دست انداختم گردنش و بوسیدمش و خندان در حالی که خودم را به مظلومیت می زدم گفتم هیچی اون وقت راحتتر فرار می کردم. یک آن احساس کردم نگاهش بیتاب و ملتهب و کلافه شد گونه را آهسته نیشکون گرفت و گفت خوب بلدی حوث آدم و پرد کنی نه؟ برای فرار از نگاهش در حالی که سرم را با آزاد کردن موهایم که به زنجیر گردنم گره خورده بود گرم می کردم گفتم نکه تو بلد نیستی؟ سنگینی نگاهش را حس کردم که خیره به من مانده بود ولی من که تاب نگاه به چشمهایش را نداشتم سرم را بلند نکردم تا اینکه با لحنی آرام و شمرده گفت بعضی وقتا فکر می کنم یعنی از این قدر که من تو رو دوست دارم، ممکنه کسی بتونه بیشتر کسی رو دوست داشته باشه؟ سرم را بلند کردم. زربان قلبم تند شده بود و احساس می کردم صورتم هم, هم قرمز شده. هیچ نگفتم. دیگر اصلا یادم نبود چه می خواستم بگویم و از او بخواهم. محوه تماشای صورتی بودم که برایم شیرین ترین و عزیزترین چهره دنیا بود. و چشمهایی که آن شب نگاهش بیتاب و سوزان بود در حالی که آن شب نه او میدانست نه من که سالهای بعد سال‌هایی که حاضر بودم هرچه دارم بدهم تا دوباره آن صورت و آن نگاه را ببینم و آن کلام را بشنوم و میسر نبود هرچه بود افسوس بود و رنج و عذابی فرساینده و بیحاصل همیشه من همون سوال را از خودم خواهم کرد و رنجی جانسوز و تلخ خواهم برد بی که صدایم در بیاید. صدای مامان که برای شام صدای ما میزد زد ما را به خودمان آورد. اگر نه شاید. آن شب موقع خواب محمد با شوخی گفت. امشب که یه خورده دیگه چونه زده بودی ممکن بود من از را به در کنی و حرفتو قبول کنم. با تعجب و حیرت پرسیدم، قبول کنی؟ راحت گفت، آره، با تردید پرسیدم، کدوم حرفمو؟ با خنده گفت، همون عروسی دومی رو یه این کار میکردی. از جا پریدم و با اعتراض گفتم، محمد، خودت خوب میدونی منظور من اونی نبود که تو میگی؟ همانطور که دوباره به زور بقلم می کرد خندان گفت و تو هم خوب می دونی که بی منظورم نبودی با همه انکاری که می کردم ولی در کمال تعجب و ناباورانه مجبور شدم به خودم اعتراف کنم که راست می گوید مهرش آنقدر در دل و جانم ریشه دوانده بود که واقعا می خواستم اون ماله که همه وجودم باشد او همان فاتح سزاواری بود که شهری را به او پیشکش میکردند. آن موقع بود که به دنیای عجیب و در درون خود پی بردم. دنیای خواستن و نیاز. نیاز و طلب و کشش جسم. نه برای تمتع و لذت. برای یکی شدن. برای متعلق کامل شدن به کسی که مالک روح و روانم بود و فهمیدم دیگر از دوران سادگی دختران فاصله گرفتم و بدون اینکه متوجه بشوم بی اختیار پا به دنیای زنانه گذاشتم نه من دیگر اصلا دختر ساده و چشم و گوش بستگی قبلی نبودم آرام آرام آدم دیگری شده بودم که با نگاه یک زن میدید و مثل یک زن حس می کرد و طلب و چونین بود که نیاز و اتش و قریز را شناختم ولی نه غریزه حیوانی که با دیدی شهوانی و کامچویانه تنها به ارزای جسم می انجامد. در کنار او حتی خواستن و کشش جسمی هم برای من یک عالم دوست داشتنی بود که احتیاج بینهایتم را به او نشانم میداد. وصل برای من متعلق کامل شدن به او بود و کشف دنیایی دیگر از زندگی. من جزء آن دست از بندگان خوشبخت خداوند بودم که اول روح و قلبم تصاحب شده بود و در پی آن جسمم به تسلیم قانع میشد. نه از آن بیچارگانی که جسمشان می میشد و بعد تشنه و به دنبال ارزای روحشان حیران و سرگردان میشوند. حالا میفهمم که بیشتر ناسازگاریها، بدبختی ها و یاس و سرخوردگیهای روحی آدمها از همین اشتباه محس که شهوت پرستی در آغاز راه است ناشی میشود. درست مثل اینکه که به جای ستونهای یک خانه اول سقف را بنا کنیم. ارواح خوشبخت در این عالم آنهایی که ستونهایی از مهر و عشق و تفاهم و درک و وابستگی عاطفی و کشش روحی مبنای رابطهشان است و در انتها وصل جسم به عنوان سقف آن بنا میشود. غیر از آن و اگر از سخف بخواهی شروع کنی، به جز سرگشتگی و دلزدگی و گمراهی که آدمها را به بیراهه می اندازد و خسته و افسرده، حیران و درمانده به حال خودشان می حاصلی ندارد. بعد از آن شب دوباره مثل روزهای اول نامزدیمان به هم نزدیک شده بودیم و هر دو شادمان و خوشبخت بودیم. خوشبختی که. دوام چندانی نداشت چون آرامشمان تا هفته بعد طول کشید نمیدانم چه شده بود که رفته رفته نسبت به محمد احساس مالکیت مطلق و حسادت کور و احمقانه پیدا می‌کردم و شدت این اخلاق مزخرف به مرور ما را که در تنهایی خوشبخت بودیم در مواجهه با جمع و دیگران دچار مشکل می‌کرد کم کم توجه محمد به هر چیز و هر کس برای من حکم اعلان جنگ را پیدا می کرد. به خیال خودم او را کامل می خواستم. که او را دارم. او مال من بود ولی من با منطق کور خودم ابله ها خواستم عشق او را بیمه کنم و برای خودم نگه دارم. منتها، درست برعکس آنچه شرط عقل و درایت بود عمل می کردم و نمی دانستم. معلوم است که تیشهی برنده تر از نادانی برای از ریشه درآوردن آدم وجود ندارد و من نادانسته به دست خودم تیشه به ریشهی وجودم می زدم. کافی بود توجه او را به چیزی حس کنم تا به چشم دشمن و هوو به آن چیز نگاه کنم. کوه کتاب درس جواد سریا و غیره همه دشمنهایی بودند که می‌خواستم از پادرشان بیاورم و این جز به دلیل نادانیم نبود که در یک بعد از دوست داشتن تا نهایت پیش رفتم و در ابعاد دیگر که درک و تفاهم و حفظ و نگهداری عشق بود در جا زدم و درماندم حسادت کور و احمقانه بلاخره جلوی پایم چاهی عمیق کند چون دشمنی نبود که به جنگش بروم دشمن من حماقتم بود و نمیفهمیدم این بود که چون ندشمن را درست میشناختم نه راه مبارزه را بلد بودم به جای دشمن خودم و محمد را زخمی میکردم رنج میدادم و عذاب میکشیدم و نمیفهمیدم یکبار بار محترم خانم درباره رفتار الهه حرف قشنگی به من زده بود که برای همیشه توی گوش من ماند. او گفته بود: «مادر: خدا کنه بدی هایی که آدم میکنه اش از نادانی باشه. نادانی رو هم خدا میبخشه هم بنده خدا. ولی بدی هایی که از سر بد ذاتی و قصد و قرض است نقابل بخشش است نگذشت. چیزی که من بعدها فهمیدم این بود که در هر دو حالت نمی شود از بدی انتظار خوبی داشت. بیهوده نگفتند که گندم از گندم بروید جوز جو. از طرف دیگر آزار رساندن و اذیت کردن دیگران لزوما نشانه بد ذاتی نیست. کافیست کمی نادان باشی و به احساست میدان بدهی و در مورد آن نه تنها شک نکنی، به آن اطمینان هم داشته باشی. معلوم است اعتماد و اطمینان کورکورانه به خود دیگران چه سرانجامی دارد. من هم آن روزها نادانی بودم که نمیدانست نادان است و به آن چه بودم راضی بودم و این بود که با سر به زمین خوردم و دیگر قدر راست نکردم. بله. وقتی جهالت حسادت و حماقت در همما میزند برای ویران کردن دنیا هم کافی چه برسد به زندگی